ژن خودخوا نوشته ریچارد داکینز. فصل پنجم بخش دوم برای انسان ها این امکان هست که وارد قرارداد یا ساخت و پاخت هایی که به نفع تک تک افراد است حتی اگر آن وضعیت به مفهوم ای اس اس پایداری نداشته باشد اما به این دلیل این امکان وجود دارد که هر فرد بینش حشیاری آینده نگری آگاهانه خود را به کار میگیرد و میتواند متوجه باشد که در دراز مدت به سود خودش است که آن قراردادها را رعایت کند. حتی در قراردادهایی بین انسانها دائم این خطر وجود دارد که افراد بخواهند با زیرپا گذاشتن قواعد در کوتاه مدت به چیزهای زیادی برسند که وسوسه برای این کار زیاد است شاید بهترین مثال صبات قیمتها باشد در دراز مدت به نفع همه صاحبان پمپ بنزین است که قیمت بنزین را در یک سطح غیرعادی بالا نگه دارند بر اساس برابردی آگاهانه از بیشترین منفعت در دراز مدت این حد قیمت ممکن است تا زمانی طولانی ادامه داشته باشد. اما هر از گاهی یک نفر تسلیم این وسوسه می شود که با کم کردن نرخهایش پول زیادی به جیب بزند. همکاران او هم فورا همان روش را رو پیش می‌گیرند و موجی از کاهش قیمت کشور را فرا می‌گیرد. برای همه ما جای تأسف است که دوباره نگری آگاهانه صاحبان پمپ بنزین کار خودش را می‌کند و دوباره آنها وارد یک قرارداد برای تثبیت قیمت می‌شوند. بنابراین حتی در میان انسان ها گونه ای که آینده نگری آگاهانه دارد قرار داد یا تبانی که برای منفعت بیشتر در دراز مدت منعقد می شود مدام به خاطر خیانت از درون در آستانه فروپاشی است. در حیوانات وحشی که با جنهای پرتلاش کنترل می شوند دیدن روش هایی که در آن منفعت گروه یا راهبردهای تبانی امکان تکامل داشته باشند مشکل تر است. ما باید انتظار یافتن راهبردهایی هایی از نظر تکاملی پایدار را در همه جا داشته باشیم. در مثال فرضی من، این فرض ساده را داشتیم که هر فرد اقاب یا کبوتر بود و در آخر از نظر تکاملی به یک نسبت پایدار اقاب به کبوتر رسیدیم. در واقع به این معنی که میتوان در خزانی ژن به نسبت پایداری از ژن اقاب به جن کبوتر داشتیم. اصطلاح فنی این وضعیت در ژنتیک چند شکلی بودن پایدار است. پلی در واقع از نظر ریاضی معادله دقیق ESS را می توان بدون چند شکلی بودن به صورت زیر به دست آورد. اگر هر فرد قادر باشد در هر رقابت خاص مثل اقاب یا مثل کبوتر رفتار کند، می توان به ESS رسید که در آن همه افراد به احتمال برابر رفتاری مانند اقاب، مثلا هفت هم در نمونهای که دیدیم دارند و در عمل به این معنی است که هر فردی که وارد یک رقابت می شود یک تصمیم اتفاقی گرفته که در این موقعیت چه مانند اوقاب رفتار کند چه مانند کبوتر این تصمیم با تبعیض هفت پنجم به نفع اقاب است بسیار مهم است که این تصمیم گرچه به نفع اقاب است تصادفی باشد به این مفهوم که هیچ راهی وجود ندارد که یک طرف پیش بینی کند حریفش در هم مسابقه خاص چه رفتاری می داشته باشد. برای مثال فایده ای ندارد در هفت جنگ پشت سر هم نقش اقاب و سپس در پنج جنگ پشت سرهم نقش کبوتر را داشت و همینطور ادامه داد. هر فردی که چنین توالی ساده ای را اختیار کند رقیبش به سرعت به او می رسد و جلو میزند. راه امتیاز گرفتن از فردی که راهبردش توالی ساده باشد این است که هر وقت که می‌دانید که می‌خواهد نقش کبوتر را بازی کند در مقابلش نقش اقاب را بازی کنید. البته داستان اقاب و کبوتر بیش از حد ساده است. چیزی نیست که واقعا در طبیعت وجود داشته باشد. بیشتر یک مدل است. اما در درک چیزهایی که در طبیعت رخ می‌دهد به ما کمک می‌کند. مدل ممکن است مانند همین مثال خیلی ساده باشد ولی در این حال برای فهماندن یک نکته یا دادن تصویری از یک چیز بسیار مفید میتوان با کار روی مدل ساده به تدریج آنها را دقیق تر و پیچیده تر کرد اگر همه چیز خوب پیش برود به تدریج که پیچیده تر میشوند به دنیای واقعی بیشتر شباهت پیدا میکنند معرفی چند راهبرد دیگر روشی برای شروع ساختن مدل اقاب و کبوتر است اقاب و کبوتر تنها وضعیت ممکن نیستند مینارد سمیت و پرایس راهبرد پیچیدتری را معرفی کردند که تلافی جو نام دارد تلافی جو در آغاز هر جنگ نقش کبوتر را بازی میکنند یعنی اینطور نیست که مثل اقاب با تمام قوا حمله را شروع کند بلکه رفتاری تهدید کننده و آرام دارد اما اگر حریف به او حمله شود تلافی میکند به عبارت دیگر یک تلافیجو وقتی مورد حمله عقابی قرار گیرد مثل اقاب میشود و وقتی در مقابل کبوتر قرار گیرد مثل کبوتر رفتار میکند تلافیجو یک استراتژیست مشروط است رفتارش بستگی به رفتار حریف دارد نوع دیگری از استراتژیست مشروط قلدر رام دارد قلدر مانند اقاب گشت میزند تا کسی پاسخش را بدهد آن وقت فورا درمیرود باز یک تلافیجوی دیگر هست با نام تلافیجوی جسور تلافیجوی جسور در کل مانند تلافیجوی معمولی است اما گاهی در مسابقه کمی شدت آن را زیاد میکند در صورتی که حریف جوابش را ندهد به رفتار عقابیش شدت می‌بخشد اما اگر حریف هم سر جنگ داشته باشد مثل کبوتر حالت تهدیدآمیز معمول را به خود می‌گیرد اگر به او حمله کنند درست مثل یک تلافیجوی معمولی انتقام می‌گیرد اگر همه این پنج راه بردی که ذکر کردم در یک برنامه شبیه‌سازی کامپیوتری رها شوند فقط یکی از آنها تلافیجو از نظر تکاملی با ثبات از آب درمی‌آید تلافیجوی جسور تقریبا باثبات است کبوتر باثبات نیست زیرا عقابها و قلدرها جمعیت کبوترها را قلع و قم می‌کنند. اقاب با ثبات نیست زیرا کبوترها و قلدرها جمعیت ها را از بین میبرند قلدر با ثبات نیست زیرا عقابها جمعیت قلدرها را نابود می کنند. در جمعیت تلافیجو هیچ راه راهبرد دیگری تاخت و تاز کند زیرا هیچ راهبرد دیگری از خود تلافیجو بازدهش بهتر نیست با این حال کبوتر در یک جمعیت تلافیجو عملکردش به همان اندازه خوب است این یعنی در شرایط یکسان تعداد کبوترها به آرامی زیاد میشود حالا اگر تعداد کبوتر به طور چشمگیری زیاد شود تلافیجوی جسور و از غذا اقاب ها و قلدرها ها کم کم به یک برتری دست پیدا می کنند زیرا بهتر از تلافیجوی معمولی خدمت کبوترها می رسند برخلاف اقاب و قلدر خود تلافیجوی جسور تقریبا یک ESS است. به این مفهوم که در جمعیت تلافیجوهای جسور فقط یک راه برد دیگر یعنی فقط تلافیجو کمی موفق تر است می میشود انتظار داشت که یک جمعیت مخلوطی از تلافیجو و تلافیجوی جسور دست بالا را داشته باشد احتمالاً با نوسان ملایمی بین این دو همراه با نوسانی به اندازهٔ اقلیت کوچک کبوترها باز هم لازم نیست قضیه را به صورت چند شکلی بودن در نظر بگیریم که در آن هر فرد همواره به یکی از دو راهبرد موجود اقتدا میکند نقش هر فرد ممکن است ترکیب پیچیده‌ای از تلافیجوی جسور و کبوتر باشد این نتیجه‌ی نظری از چیزی که در واقعیت در بسیاری از حیوانات وحشی روی میدهد دور نیست ما به نوعی مفهوم مشت با دستکش را در تهاجم حیوانات شهر دادیم البته جزئیات آن بستگی به امتیازی دارد که به برد زخمی شدن اطلاف وقت و غیره تعلق میگیرد در نوعی فیلهای دریایی، جایزه برد ممکن است حق در انتصار داشتن یک حرمسرای بزرگ پر از ماده باشد. بنابراین، امتیاز این پیروزی بسیار بالاست. جایی تعجب ندارد که جنگهای وحشیانه و احتمال جراحت بسیار زیاد باشد. زیان اطلاف وقت در مقایسه با دردسر زخم شدن و فایده برنده شدن قطعا ناچیز خواهد بود. ولی برای پرنده کوچکی در اقلیم سرد سیر ارزش وقت بسیار حیاتی است. پرندهی به نام چرخ ریسک بزرگ وقتی قضا دادن به جوجه لازم است به طور متوسط هر سی ثانیه یک تعمه شکار کند. هر ثانیه از روشنایی روز برای او با ارزش است. حتی مدت زمان نسبتا کوتاهی که در جنگ اقاب عقاب تلف میشود را احتمالا باید جدیتر از احتمال خطر به چنین پرندهای دانست متأسفانه در حال حاضر دانش ما آنقدر نیست که واقع واقعبینانهای را به این هزینهها و سودهای مختلفی که در طبیعت حاصل میشود نسبت دهیم باید مواظب باشیم که نتیجه فقط از روی روش دلبهخواهی ما در انتخاب اعداد نباشد نتایج کلی که مهمان این است که اس ها در جهت تکامل پیش می رفن یک اس با مغلوب ترین وضعیتی که یک گروه می تواند با تبانی با آن دست پیدا کند فر دارد و اقل متعارف ممکن است ما را به بیراهه بکشد یک نوع دیگر از بازی های جنگی که مینارد سمیت در نظر گرفته جنگ فرسایشی است این جنگ را می شود در ای دید که هرگز درگیر مبارزای خطرناک نشده است شاید گونه کاملا مسلحی که در آن احتمال مجروح شدن بسیار کم است. در این گونه همه دعواها با جست و خیافه گرفتن های قراردادی برطرف می شود. در هر رقابتی یکی از دو طرف کوتاه می آید. برای برنده شدن تنها کاری که باید کردین است که سر جای خود بمانی و حریف خیره شوی تا بالاخره او دو دومش را روی کولش بگذارد و برود. و دیگه هیچ حیوانی نمیتواند زمان نامحدودی را صرف تهدید کردن کند. کارهای مهم دیگری هم هست که باید انجام شود. چیزی که فرد به خاطر آن می جنگد برایش ارزش دارد ولی ارزش آن بیحد و حساب نیست. مثل حراج در مزایده تا فلان قدر زمان می ارزد و هرگز آماده است تا آنقدر زمانش را صرف کند. زمان وجه رایج این مزایده است که دو پیشنهاد دهنده دارند. و کنید همه که این افراد از قبل دانستم که فلان چیز مثلا یک ماده دقیقا ارزش چقدر صرف وقت را دارد. همیشه یک فرد جهشی که حاضر باشد جلوتر برود برنده می شود. بنابراین این راهبرد که همیشه یک کت ثابت را در مزایده حفظ کنیم پایدار نیست. حتی اگر بشود ارزش آن منبع را خوب براورد کرد و همه افراد دقیقا قیمت مناسب را پیشنهاد بدهند باز هم راهبرد پایداری نیست. هر دو نفری که بر اساس این راهبرد حداکثری حد پیشنهاد میدهند دقیقا در یک لحظه می میشوند و هیچ کدام با آن منبع دست نمیابند. بنابراین برای فرق به سرفترین است به جای اینکه در چنین رقابتی وقتش را هدر بدهد از همان اول کوتاه بیاید تفاوت مهم بین جنگ فرسایشی و یک حراج مزایده واقعی ای در این است که در جنگ فرسایشی هر دو طرف مسابقه از خود مایه می‌گذارند ولی فقط یکی از آنها به چیزی میرسد. در جمعیت پیشنهاد دهندگان حد اکثری راهبرد از ابتدا هستیم شدن کارآمدتر است و در جمعیت پخش می شود. در نتیجه مقداری سود آید آنهایی می شود که فورا تسلیم نشدند بلکه قبل از تسلیم شدن صبر کردند. این راهبرد وقتی صرفه است که در مقابل آنهایی به کار گرفته شود که بلا فاصله پا به فرار میگذارند و حالا دست بالا را در جمعیت دارند. به این دردی به نقاب طبیعی کش دادن تدریجی زمان تسلیم را ترجیح میدهد بار دیگر به حد اکثری نزدیک شود که ارزش واقعی آن منبع مورد بث اجازه میدهد. یک بار دیگر با استفاده از باجه ها به ساختن تصویری از نوسان در یک جمعیت پرداختیم. یک بار تحلیل ریاضی نشان میدهد که این کار صحیح نیست یک راهبرد از نظر تکاملی با وجود دارد که می شود آن را مثل یک رابطه ریاضی بیان کرد اما وقتی از واجهه ها استفاده میکنیم به اینجا میرسیم هر فرد تا یک زمان غیرقابل قابل پیش بینی ادامه می دهد. یعنی در هر وضعیت خاص غیرقابل قابل پیش بینی است ولی روی هم رفته ارزش واقعی آن منبع است برای مثال فرض کنید آن قنیمت فقط ارزش 5 دقیقه نمایش را داشته باشد. در SS هر فرد خاص ممکن است بیش از 5 دقیقه کمتر از 5 دقیقه یا دقیقا همان 5 دقیقه ادامه دهد. نکته مهم این است که حریف او از هیچ راهی نمیتواند بفهمد که او در این وضعیت خاص تا چه مدت آمادگی مقاومت دارد. معلوم است که در جنگ فرسایشی بسیار مهم است که طرفین با نشانهای ضمنی بروز ندهند چه وقتی میخواهند تسلیم شوند هر کسی که با لرزیدن یک موی پشت لب دستش رو شود یعنی به طرف بفهماند که به فکر سپرانداختن افتاده در موضع ضعف قرار خواهد گرفت مثلا اگر لرزش سبیل نشانه این باشد که حتما تا یک دقیقه دیگر عقب نشینی صورت میگیرد یک راهبرد ساده برای برنده شدن پیدا می شود آن چیست؟ اگر سیبیل هدیف لرزید صرف نظر از اینکه که نقشه قبلی خودت برای تسلیم چه بوده یک دقیقه دیگر صبر کن اگر تو برای خودت فقط یک دقیقه دیگر می وقت بگذاری و دیگر تمام کنی ولی هنوز سیبیل طرف نلرزیده فورا تسلیم شد و دیگر وقت رو هدر نده هیچ وقت سیبیلت نباید بلرزد بنابراین انتخاب طبیعی لرزش سیبیل و هر اشاره زمینی دیگری را که به رفتار آینده اشاره کند خیلی سریع به کیفر میرساند قیاف های بیحالت در راه تکامل پیش می روند چرا به جای دروغ تمام ایار چهره های در راه تکامل پیش می روند؟ برای اینکه دروغگویی باثبات نیست موردی را فرض کنید که در آن اکثریت افراد فقط در صورتی که واقعا قصد ادامه یک جنگ فرسایشی طولانی را دارند موی سر و گردن را سیخ می کنند. در این حالت های مقابل تکامل پیدا کنند. آنهایی که وقتی حریف را با سر و موی برافراشته می‌بینند، فورا می می‌شوند. اما حالا ممکن است دروغگوها به مسیر تکامل بیفتند افرادی که واقعا قصد جنگ طولانی را ندارند ولی در هر مورد سر و موی خود را سیخ می‌کنند، از منافع یک پیروزی آسان و سریع برخوردار میشوند. بنابراین ژن دروغگو پخش می شود. وقتی دروغ اکثریت یا آن وقت انتخاب طبیعی افرادی را برمیگزیند که دست آنها را می‌خوانند. به این ترتیب دوباره تعداد دروغگوها را به کاهش میگذارد. در جنگ فرسایشی از نظر تکاملی ثبات دروغگویی بیشتر از راستگویی نیست. وقتی سرانجام زمان رو شدن ده سا می رسد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است تا اینجا ما فقط به آن چیزی پرداختیم که مینارد اسمیت آن را رقابت متقارن مینامد یعنی ما فرض را بر این گذاشتیم که طرفین رقابت از هر نظر جز راه راهبرد جنگ مانند یکدیگرند فرض بر این بود که عقاب‌ها و کبوترها هر دو به یک اندازه قوی و هر دو کاملا از تجهیزات جنگی و رزمی یکسانی برخوردارند و از برنده شدن سودی برابر نصیبشان می شود. این فرض ساده ای بود برای ساختن یک نمونه کوچک اما خیلی به واقعیت نزدیک نبود. پارکر و مینارد سمید به رقابت های نامتقارن هم برداختن. برای مثال اگر افراد از نظر جسه و توانایی جنگیدن با هم فرق داشته باشند و هر فرد بتواند بزرگی رقیب را در مقایسه با جسه خودش محک بزند آیا این قضیه ای اس حاصل را تحت تأثیر قرار می دهد؟ یقینا شنین است به نظر میرسد در کل سه نوع نامتقارن اصلی وجود داشته باشد نوع اول رو همین حالا دیدیم افراد از نظر جسه یا تجهیزات جنگی با هم فرق دارند دوم افراد از نظر سودی که از برنده شدن به دست میآورند با هم متفاوتند برای مثال، یک نر موسن که پایش لب گور است، چیزی کمتر برای از دست دادن دارد، تا نر جوانی که زمان زیادی از زندگی بارورش را در پیش رو دارد. سوم پیامد قریب این نظریه است که یک عدم تقارن کاملا دل بخواه و ظاهرا بی رفت می تواند باعث پیدایش ای شود، زیرا با آن می توان به سرعت جنگها را فرو نشاند. مثلا؟ اغلب اینطور است که یکی از حریف ها زودتر از آن دیگری به محل مسابقه می رسد. آنها را به ترتیب ساکن و تازه وارد می نامیم. به خاطر بس من فرض را بر این می گذارم که در کل به ساکن یا تازه وارد بودن امتیازی تعلق نگیرد. خواهیم دید به چه دلایلی در واقع این فرض نمی تواند درست باشد. اما موضوعی نیست. موضوع این است که حتی اگر هیچ دلیلی برای برتری ساکن به تازه وارد وجود نداشته باشد، احتمال تکامل ایسسی ای ای که به خود عدم تقارن وابسته باشد وجود دارد. می شود آن را به سادگی با انسانهایی مقایسه کرد که دعوا را با یک شیر و خط انداختن به سرعت و بدون قشخره خاتمه میدهند. راهبرد مشروط اگر ساکن هستی حمله کن اگر وارد شده ای پس به کش را میتوان یک اس است. از آنجا که این عدم تقارن بخواه فرض می شود، راهبرد مخالف آن اگر ساکن هستی عقب نشینی کن، اگر وارد شده ای حمله کن، هم می تواند پایدار باشد. اینکه در یک جمعیت کدام یک از این دو راهبرد اختیار شود، بستگی به این دارد که کدام راهبرد قبل از دیگری به اکثریت رسیده باشد. همین که اکثریت یک جمعیت یکی از این دو راهبرد مشروط را برگزید، آنها که غیر از آن را انتخاب کنند مجازات می شوند. و به این ترتیب طبق تعریف یک ESS است به عنوان مثال پرس کنید همه افراد نقش ساکن برنده می شود تازه وارد می را پیاده کنند. این یعنی هر کس در نمیه جنگ ها برنده و در نمی از آنها بازنده است. آنها هیچ وقت زخمی نمی شوند و هرگز وقت را تلف نمی کنند زیرا مراسمی قراردادی همه جنگ و دعواها را فرو ف حالا یک شورشی تازه به میدان آمده را مجسم کنید فرض کنید او راهبردی کاملا عقابگونه دارد همیشه حمله میکند و هرگز پس نمیکشد. وقتی حریف او یک تازه وارد باشد برنده شود. وقتی حریفش یک ساکن باشد احتمال زخمی شدن بسیار زیاد است روی هم بازدهش بازدهش از افرادی که طبق قاعده های قراردادی دلبخویی ISS رفتار کنند با اینتر است آن شورشی که سعی کند مقررات را برعکس کند یعنی اگر ساکنی فرار کند اگر تاز واردی حمله کن، نتیجه کارش بدتر از این است. اونا فقط پشت سر هم مجروح می شود در رقابت ها به ندرت برنده می شود. با این حال فرض کنید افرادی که این عکس قاعده را اجرا می کنند به نفع شانسی به اکثریت دست پیدا کنند. در این حالت راهبرد آنها هنجار ثابت و انحراف از آن مستق مجازات می شود. می توان تصور کرد که اگر جمعیتی را در طول چند نسل در نظر می‌گرفتیم، یک رشت پرشهای گاهگاهی را از یک حالت پایدار به حالت دیگر در آن مشاهده می‌کردیم. اما در زندگی واقعی شاید عدم تقارن‌های واقعاً دل‌بخوایی وجود نداشته باشد. برای مثال، ساکن‌ها احتمالا نسبت به تازه‌وارتا در عمل دارای برتری هستند. از وضع محل مسابقه اطلاع بیشتری دارند شاید تازه‌وارد خسته‌تر باشد زیرا او تازه به آنجا پا گذاشته در حالی که ساکن از قبل در آنجا بوده است از اینکه چرا از این دو حالت پایدار ساکن برنده میشود و تازه‌وارد عقب نشینی کند احتمال یکی بیشتر است یک دلیل انتظاری تر وجود دارد و آن این است که در راهبرد برعکس آن، یعنی تازه وارد برنده می شود، ساکن آغب لشینی می کند. یک تمایل ذاتی به تخریب خود وجود دارد. چیزی که مینارد سمیت اسم آن را راهبرد متناقض گذاشته است. در هر جمعیت که در این وضعیت ایستس متناقض قرار دارد، افراد مدام سعی می کنند. عنوان ساکن گیر نیفتند. همیشه می در هر برخوردی تازه وارد باشند و تنها با بیوقف گشت زدنی که در این صورت عبست به نظر می رسد در راه خواسته های خود تلاش می کنن. کاملا غیر از حزینه ای که این کار از نظر صرف وقت و انرژی می برد و می شود آن را طوری تحمل کرد در این روند تکاملی گرایشی به پایان دادن به وجود مقوله ساکن دیده می شود. در اینجا جمعیت دیگری که در وضعیت باثبات ساکن میبرد تازه بارد عقب میشیند قرار دارد انتخاب طبیعی افرادی را ترجیح میدهد که میکوشند ساکن باشند این برای هر فرد یعنی چسبیدن به یک تکه زمین خاص حتی امکان کمتر ترک کردن آن و ظاهرا دفاع از آن همانطور که حالا همه می‌دانند، این رفتار تحت نام دفاع از حریم در طبیعت زیاد مشاهده می شود شست رفته ترین نمودی را که من از این شکل عدم تقارن رفتاری می شناسم توسط رفتارشناس برجسته نیتو تیمبرگن در آزمایشی ارائه شده است او یک ظرف ماهی داشت که در آن دو ماهی خاردار نر بود هر کدام از این دو ماهی در یک انتهای آن ظرف برای خود لانه ای ساخته بودند و از حریم آن لانه دفاع می کردن. تیمبرگن هر کدام از آن دو ماهی نر را در یک لوله آزمایش ای بزرگ گذاشت و دو لوله را کنار هم قرار داد. این دو نر را که می از پشت شیشه با هم به جنگن تماشا کرد. حالا به نتیجه جالب آن می دسیم. وقتی دو لوله را به حلوش لانه ماهی A می برد، ماهی A یک حالت جنگنده می و ماهی بی سعی می کرد عقب نشینی کند. اما وقتی دو لوله را به حریم بی نزدیک می کرد اوضاع برعکس می شود. فقط با بردن لوله ها از یک طرف ظرف به آن طرف دیگر تیمبرگن تعیین می کرد که کدام در حمله کننده و کدام عقبنشین کننده باشد. هر دو نر به صورت آشکاری راهبرد مشروط ساده را پیش می بردند. اگر ساکنی حمله کن اگر تازه واردی، عقب نشینی کن. اغلب زیستشناسان این سوال را مطرح می کنند که امتیاز رفتار قلمرو داشتن از نظر زیستشناسی چیست. نظرهای زیادی در این مورد ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد. اما خود این سوال دیگر ممکن است بیمورد به نظر برسد. دفاع از قلم رو شاید فقط ایسی باشد به خاطر عدم تقارن و زمانی پدید میآید، که تعیین کننده ی رابطه بین دو فرد و یک قطعه زمین است. شاید مهمترین نوع عدم تقارن قید دل بخواهی در اندازه و توانایی کلی جنگیدن باشد. داشتن جسد بزرگ همیشه اصلی ترین دلیل برنده شدن در جنگ نیست، ولی احتمالا یکی از دلایل آن است. اگر از دو نفر که میجنگند همیشه آنکه درشتتر است برنده شود و اگر هرکس مطمئن باشد که چه کوچکتر یا بزرگتر از حریف خود باشد فقط یک راهبرد معنا دارد اگر حریفت است و است در برو با کوچکتر از خود بمان و بجنگ اگر اهمیت درشتی هیکل مورد تردید قرار گیرد اوضاع کمی می شود در صورتی که درشتی جث برتری کمی به حساب میآید آن وقت که کمی پیشتر ذکر شد همچنان پایدار است اما اگر خطر زخمی شدن جدی باشد، یک راهبرد متناقض نمای دومی هم وجود خواهد داشت. به این صورت، با آنها که از تو درشترن به جنگ و از آنها که از تو کوچکترن فرار کن. معلوم است چرا به این راهبرد برد متناقض نما گفتن. به نظر کاملا مخالف علق سلیم است و به دلیل زیر ممکن است باسوبات باشد. در جمعیتی که همه افراد از راهبرد برد متناقض نما پیروی می کسی آسیب نمیبیند. به این دلیل که در هر دو رقابت، یکی از شرکت کننده ها، آنکه درشتر است، همیشه پاپ فرار میگذرد یک فرد جهش یافته با اندازه ای متوسط که از راهبرد معقول کسی را که از تو کوچکتر است رها نکن، به ناچار با نیمی از افراد که به او بر درگیر یک جنگ پرشتاب می شود. زیرا اگر کسی را کوچکتر از خودش ببیند حمله می کند، آن فرد کوچکتر به شدت جواب حمله او را می چون نقش متناقضی را اجرا می کند. گرچه احتمال برنده شدن آن استراتژیست معقول بیش از آن فرد متناقض نماست با این حال، هنوز خطر باخت یا جراحت شدید او زیاد است. از آنجا که اکثریت جمعیت را متناقض نما تشکیل میدهند، احتمال زخمی شدن یک استراتژیست معقول بیش از هر استراتژیست متناقض است گرچه یک راهبرد متناقض نما میتواند با ثبات باشد اما احتمالا فقط مورد توجه اهل علم است های متناقض نما تنها در صورتی بازده بالاتر از متوسط دارند که به شدت تعداد ها را کم کنند اولا تصور اینکه چگونه ممکن است چنین وضعیتی پیدا شود مشکل است حتی در آن صورت نسبت معقولها به متناقض نماها در آن جمعیت باید فقط کمی به سمت معقولها میل کند تا به منطقه جذب آن ایاس دیگر یعنی معقولها برسد منطقه جذب ای از نسبت های جمعیت است که در آن در این مورد استراتژیست معقول دست بالا را دارد همین که جمعیتی به این منطقه رسید داجرم به سوی نقطه پایدار معقول کشیده می شود. یافتن موردی از یک ISS معقول در طبیعت جالب است. ولی من شک دارم که ما امید انجام این کار را داشته باشیم. کمی پیشتر ازار نظر کردم. بعد از نوشتن این آخرین جمله پروفسور مینارد اسمیت توجه من را به توصیف زیر از رفتار انکبوت اجتماعی مکزیک به اسم دوکوبی سیویت از جه و بورگس جلب کرد که نوشته اگر انکبوتی ناراحت مجبور شود با اغبنشینی بیرون برود مثل برق به طرف سخره می رود و اگر درز و شکافی پیدا نکند که در آن پنهان شود ممکن است در محل اختفای یک انکبوت همگونه خود خودپناه بگیرد اگر وقت این تازه وارد به درون آن می رود, آن انکبوت در شکاف خود باشد به تازوارت حمله نمی‌کند بلکه به سرعت بیرون می‌رود و دنبال پناهگاه دیگری برای خود می‌گردد بنابراین وقتی انکبوت اول ناراحت می‌شود توالی روند جابجا جا شدن از یک لانه به لانه دیگر ممکن است تا چند ثانیه ادامه یابد که اغلب منجر به این می‌شود که اکثر انکبوتهای آن از پناهگاه خود به یک جای ناآشنا بروند انگیوتای اجتماعی سن مارس 1976 این رفتار به مفهومی که در صفحه 72 آمده متناقض است اما اگر افراد خاطری جنگ‌های گذشته را به ذهن سپرده باشند چگونه می می‌شود بستگی دارد به اینکه آن ها چیز کلی یا جزء به جزء باشد جیر ها یک خاطره کلی از آنچه در گذشته رخ داده در ذهن دارند جیرجیرکی که در تعدادی از جنگ‌های اخیر برنده بوده بیشتر اقاب می شود جیر که در این اواخر روی دنده باخت بوده بیشتر کبوتری می شود این را ر ده الکساندر به خوبی نشان داده است او از یک جیرجیرک مصنوعی برای حمله به جیرجیرکهای واقعی استفاده کرد بعد از این کار احتمال باخت آن جیرجیرکهای واقعی در مقابل جیرجیرکهای واقعی دیگر بیشتر شد می توان اینطور در نظر گرفت که هر جیرجیرک مدام میزان توانایی جنگی خودش را با توانایی یک فرد متوسط آن جمعیت میسنجد. اگر جانداره مانند جیرزی رک کارشان بر مبنای خاطره کلی جنگ های گذشته است برای مدتی با هم در یک گروه بسته نگه داشته شوند احتمالاً نوعی سلسله مراتب حاکمیت در آن پیدا می شود یک مشاهدگر می تواند آن افراد را به ترتیب درجه بندی کند افرادی که از نظر درجه پایینتر هستند، تسلیم افرادی می که درجه از برد دارند. افرادی که به بردن عادت کردند، احتمال بردشان بیشتر می شود. در حالی که افرادی که به باخت عادت کردهاند به تدریج احتمال باختشان بیشتر می شود. حتی آنهایی هم که در ابتدا برد و باختشان کاملا بینظم بوده در این جهت پیش می رود که خود را در یکی از این دو گروه طبق بندی کنند و نتیجه ضمنی آن این است که از تعداد جنگ‌های شدید درون گروه کاسته می‌شود من باید عبارت نوعی سلسله مراتب حاکمیت را به ببرم زیرا مردم اکثرا از سلسله مراتب حاکمیت در مواردی استفاده می‌کنند که در آن شناخت افراد نقش دارد در این مورد خاطره جنگ‌های گذشته بیشتر جزء به جزء از تا کلی جیرجیرک هم مثل آدم ها نیستم که همدیگر را بشناسند اما مرغا و میمون ها یکدیگر را میشناسند اگر شما یک میمون باشید میمونی که در گذشته شما را مغلوب کرده احتمالا در آینده هم شکستتان خواهد داد بهترین راه راهبرد برای هر فردی است که نسبت به کسی که قبلا از او شکست خورده تقریبا کبوتری رفتار کند اگر تعدادی مرغ که قبلا همدیگر را ندیدند در کنار هم قرار گیرند معمولا جنگ زیادی در میگیرد بعد از مدتی جنگ فرو می‌نشیند، ولی نه به این دلیل که در جیرجیرکها دیدیم در مورد مرخات دلیل دلیلی است که هر فرد جایگاه خود را نسبت به افراد دیگر درک می کند اتفاقا این در کل به نفع گروه است از این به عنوان یک شاخص استفاده کرده و متوجه شده اند. که در گروه های شکل گرفته مرغها که در آن جنگ های شدید به ندرت رخ میدهد، تولید تخم بیشتر از آن گروهی است که در آن چگونگی عضویت افراد مدام در تغییر است و در نتیجه در آن جنگ بیشتر است.